ولا تجادلو اهل الكتاب إلا بالتي هي احسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل إلينا وانزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون و با اهل کتاب جز به روشی که آن بهتر است مجادله نکنید مگر کسانی از آنان ستم هم و بگویید به آنچه از سوی خدا بر ما نازل شده و آنچه بر شما نازل شده، ایمان آور ایم. و معبود ما و معبود شما یکی است و ما برای او تسلیم هستیم.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 و این گونه کتاب را بر تو نازل کردیم پس کسانی که به آنها کتاب آسمانی دادیم به آن ایمان می‌آورند و از همین گروه مشرکان نیز کسی است که به آن ایمان می‌آورد و آیات ما را جز کافران انکار نمی‌کنند و ما قل... من من تا و تو هرگز پیش از این قرآن هیچ کتابی را نمیخواندی و با دست راست خود چیزی نمینوشتی اگر چنین بود با تلگرایان به شک و تردید میافتادند. بل هو آیات بینات في صدور الذين اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون بلك ان قران روشنی است که در سینه کسانی که دانش داده شده اند جای دارد و آیات ما را جستم کاران انکار نمی کنند وقالوا لولا أنزل علیه آیات من ربه قل إنما الآیات عند الله وإنما أنا نذیر مبین و گفتند چرا نشانههایی از سوی پروردگارش بر او نازل نشده است ای پیام بر بگو همانا نشانه ها همه نزد خداست و به فرمان او نازل می شود و من تنها هشدار دهنده ای آشکار هستم اولم یکمیهم اما انزلنا کتاب یطلا علیهم ان فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَا لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ آیا برای آنها کافی نیست که همانا ما این کتاب قرآن را بر تو نازل کردیم که پیوسته بر آنها تلاوت می شود بیگمان در این قرآن رحمت و پندی است برای کسانی که ایمان می آورند. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون بگو همین بس که خدا میان من و شما گواه هست آنچه چرا در آسمانها و زمین است میداند و کسانی که به باطل ایمان آوردند و به خدا کافر شدند اینان زیانکاران واقعی هستند بو استعجلونک بالعذاب ولولا لَا أَجَلٌ لجاءهم العذاب الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُونَ و آنها با شتاب عذاب را از تو طلب می کنند. و اگر مائد مقرری تعین نشده بود یقینا عذاب الهی به سراغ آنها می آمد و ناگهان در حالی که نمیدانند به سراغ آنها خواهد آمد یستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحیطة بالفرین و آنها با شتاب عذاب را از تو میطلبند و بیگمان جهنم به کافران احاطه دارد یوم یرشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ویقول ذوقوا ما كنتم تعملون روزی که عذاب آنها را از بالای سرشان و از زیر پاهایشان دربر میگیرد و خداوند به آنها میفرماید بچشید آنچه را انجام دادید يا <تصفيق> عباد الذينا آم إ أرب واس ف فمود ای بندگان من كه ایمان آوردهد بیگمان گمان زمین من وسیع است پس تنها مرا بپشتید كل نفسذائق <تصفيق> المود <تصفيق> ثم مَ إلينا ترجعون. هر کسی چشنده مرگ است سپس به سوی ما بازگردانده می شوید و آمنوا و الصالحات لنبوی انهم من الجنة غرفا لنبوی انهم من الجنت غرفا تجری من تحت ها الانهار و خالدین فیها نعم اجرال عاملین و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند قطعاً آنها را در غرفه هایی از بهشت جای میدهیم. که نهرها در زیر ریست جاودانه در آن خواهند ماند چه خوب است پاداش عمل کنندگان صبروا و على ربهم همان کسانی که صبر کردند و تنها بر پروردگارشان گارشان توکل می کنند لا تحملن رزقه الله يقها وياكم و موسم العم و چه بسیار جنبندگانی که روزی خود را بر دوش نمیگیرند خداوند به آنها و شما روزی میدهد و او شنوای داناست. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ و اگر از آنها بپرسید چه کسی آسمانها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را مسخر کرده است؟ البته میگویند الله پس چگونه از حق منحرف میشوند الله يبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شء علیم خداوند روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد فراخ میگرداند و یا برایش تنگ می دارد بی گمان خداوند به همه چیز داناست و لئن سألتهم من نزل من السماء ماء به الارض من بعد موتها ليقولن الله قلی الحمد لله بل اكثرهم لا یعقلون و اگر از آنها بپرسی چه کسی از آسمان آبی را نازل کرد آنگاه با آن آب زمین را بعد از مردنش زنده کرد البته میگویند الله بگو حمد و ستایش مخصوص خداونده است بلکه بیشتر آنها در نمی آبند وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون و این زندگی دنیا چیزی جز سرگرمی و بازیچه نیست و بی ترید اگر میدونستند سرای آخرت همان زندگی باق است. فاذا فا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون پس هنگامی که در کشتی سوار شوند خدا را با اخلاص می‌خوانند پس چون خدا آنها را با آوردن به خشکی نجات داد باز آنان شرک می آورند لیکن کفروا بما اتایناهم ولیتمتعوا فسوف يعلمون تا آن چرا به آنها دادییم کفران کنند و تا از لذات زندگی دنیا بهره گیرند پس به زودی خواهند دانست اولم یرو اننا جعلنا حرما آمنا و الناس من حولهم افب الباطل یؤمنون و الله یکفرون آیا ندیدند که همانا ما حرم امنی برای آنها قرار دادیم در حالی که مردم از اطراف آنان ربوده میشوند. آیا به باطل ایمان میآورند و به نعمت خدا ناسپاسی می کنند و من اظلم من, من افترا على الله کذبا او کذب بالحق لما جاء علیسه فی جهنم مثوا للكافرین و کیست ستمکار تر از آن کسی که بر خدا دروغ بندد یا حق را چون به سوی او آید تکذیب کند آیا جایگاه کافران در جهنم نیست وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ و کسانی که در راه ما کوشش و جهاد کنند قطعاً به راه‌های خیش هدایتشان می‌کنیم و یقیناً خداوند با نیکوکاران است بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان الف لا الف لام م غلبت الروم رومیان مغلوب شدند. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون در نزدیک ترین سرزمین و انهم بعد از مغلوب شدنشان به زودی غالب خواهند شد في مضاعي سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون در ظرف چند سال پیش از این پیروزی و بعد از این پیروزی فرمان از آن خداست و در آن روز مؤمنان شاد من خواهند شد الله ينصر من يشاء و هو به سبب یاری خداوند و خداوند هر که را بخواهد یاری میکند و او پیروزمند مهربان است وعد الله لا يخلف الله وعده ولیکن اكثر الناس لا يعلمون خداوند بعد داده است خداوند هرگز بعدی خیش را خلاف نمی کند. ولی کن بیشتر مردم نمیدانند يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون آنها فقط ظاهری از زندگی دنیا را میدانند و آنها از آخرت غافلند اولم يتفكروا في انفسهم مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ آیا در زمیر خود اند که دریابند خداوند آسمانها و زمین و آنچه را میان آن دو است جز به حق و تا زمان معینی نیافریده است و بیتردید بسیاری از مردم به دیدار پروردگارشان ناباورند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 و رسلهم فَمَا كان الله فما اللَّهُ الله فَمَا فما کان الله لیظلمهم ولیکن آیا در زمین گردش نکردند؟ تابنگرند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود؟ آنها نیرومندتر تر از اینان بودند و در زمین دگرگونی به وجود آوردند و آن را بیشتر از آنچه اینان آبادش کرده اند آباد کردند و پیام برانشان با دلایل روشن به سوی آنها آمدند پس خداوند بران نبود که بر آنها ستم کند ولی آنها به خودشان ستم می کردند. ثمّ كان عاقبت الذين أساءوا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزؤون سپس سرانجام کسانی که بدی کردند بدتر شد که آیات خدا را تکذیب کردند و آن را به مسخره می گرفتند الله یبدأ الخلق ثم يعيده ثم الیه ترجعون خداوند آفرینش را آغاز می میکند سپس آن را باز میگرداند آنگاه به سوی او بازگردانده می شوید و یوم تقوم الساعت یبلیس المجرمون و روزی که قیامت برپا شود مجرمان نامید شوند و لم یکن لهم من شرکائهم و بشرکائهم کافرین. و برای آنها از معبودانشان شفیعانی نخواهد بود و نسبت به معبودانشان کافر میشوند و يوم تقوم الساعت یومئذی و روزی که قیامت برپا شود آن روز مردم از هم جدا میشوند شوند فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَتِ يُحْبَرُونَ اما کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند آنان در باقی از بهشت شادمان و مسرور خواهند بود و ان... الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولائك في العذاب محضرون و اما کسانی که كساني كافر شدند و آیات ما و دیدار آخرت را تکذیب کردند پس اینان در عذاب الهی احضار شوند فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون پس خدا را تسبیح گوید هنگامی که شام می کنید و هنگامی که صبح می کنید وله في و له الحمد فی السماوات و الارض وعشیا وحین تظهرون و حمد و ستایش مخصوص اوست در ها و زمین به اسرگاهان و هنگامی که زهر می‌کنید یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها و تخرجون زنده را از مرد بیرون میآورد، و مرده را از زنده بیرون می آورد و زمین را پس از مردنش زنده می سازد و همین گونه روز قیامت از گورها بیرون آورده می شوید. و من آیاتهی انخلقكم من تراب ثم اذا و از نشانه های او این است که شما را از خاک آفرید پس ناگاه شما انسانهای زیادی شدید و در زمین پراکنده گشتید و من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 و از نشانه های او این است که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا به آنها آرام گیرید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد، بیگمان در این امر نشانه است برای گروهی که تفکر می کنند، و من آیاتی خلق السماوات والأرض و اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآیات للعالمین و های او آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف زبانهایتان و رنگهایتان است. بی تردید در این نشانه هایی برای دانایان است و من آیاتهی منامکم باللیل و النهار و ابتغاؤکم من فضله این فی ذالک لآیات لقومی یسمعون و از نشانه های او خوابیدن شما در شب و روز است و تلاش و بهره جستن شما از فضل اوست بیشک در این نشانه هایی است برای گروهی که میشنوند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 و از نشانه های او این است که برق را برای بیم و امید به شما نشان می‌دهد و از آسمان آبی نازل می کند. آنگاه زمین را بعد از مردنش به آن آب زنده می کند بیگمان در این نشانه است برای گروهی که می‌اندیشند.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 و از نشانه های او این است که آسمانها و زمین به فرمانش برجای می ایستند پس هنگامی که با ندائی شما را از زمین فراخاند ناگهان شما خارج می شوید و له من فی السماوات والارض کل له قانتون و از آن اوست هر که در آسمانها و زمین است وهمگی فرمانبردار او هستند. وهو الذی بدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. و او است که آفرینش را آغاز می کند. سپس آن را باز میگرداند و این باز بازگرداندن بر او آسانتر است و توصیف برتر در آسمانها و زمین برای اوست و او پیروزمند حکیم است رب لكم مثلا من نفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء, فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم <تصفيق> <تسؤال> خداوند برای شما از خودتان مثلی زده است آیا بردگانتان در آنچه به شما روزی دادیم با شما شریک هستند تا شما در آن برابر و یکسان باشید همان گونه که شما از شرکای آزاد خود بیم دارید از آنها هم بیم داشته باشید، این چونین آیات را برای گروهی که تعقل می کنند، به روشنی بیان می کنیم. بل اتبع الذين ظلموا أهوهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من بلکه ستمکاران بدون علم و آگاهی از هوا و حوزهای خود پیروی کردند پس آن را که خدا گمراه کرده است چه کسی هدایت می کند و برای آنها هیچ یاوری نخواهد بود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 پس روی خود را با حقگرایی و اخلاص به سوی دین آور فطرت الهی است که خداوند مردم را بر آن آفریده است دگرگونی در آفرینش خدا نیست این است دین استوار و ولیکن بیشتر مردم نمی دانند. منیبین ایلیه و اتقوه و اقیمو الصلاة ولا تکونو من المشرکین به سوی او بازگردید و از او بترسید و نماز را برپادارید و از مشرکان نباشید منالذین فرقو دینهم و کانو شیعاه از کسانی که دین خود را پاره پاره کردند و فرق فرق شدند و هر گروهی به آنچه نزد خود دارند خوشحالند وَإِذَا مَسَّ الناس ضرٌ دَعَو ربهم, رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ و هنگامی که رنج و زیانی به مردم برسد پروردگارشان را می‌خوانند و کنان به سوی او باز می‌گردند سپس هنگامی که رحمتی از خودش به آنان بچشاند ناگاه گروهی از آنان به پروردگارشان شرک می‌آورند لیکفروا بما فتمتعو تا به آنچه که به آنها دادئیم کفران کنند پس از لذات دنیا بهره بگیرید که به زودی خواهید دانست ام انزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم بما كانوا بهی یشرکون آیا دلیل محکمی بر آنها نازل کردیم؟ پس آن دلیل از چیزی که با خدا شریک می سازند سخن میگوید ما رحمتا فرحو بها و این تصبهم سیئتم بما قدمت ایدیهم اذا هم یقنطون و هنگامی که رحمتی به مردم بچشانیم به آن خوشحال میشوند و اگر به خاطر اعماری انجام داده اند رنج و مصیبتی به آنها برسد ناگهان میآюсь میشوند. آو ولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لا لقوم يؤمنون آیا ندیدند که خداوند روزی را برای هر کس که بخواهد فراخ می‌گرداند و یا تنگ می گیرد؟ بیگمان در این گشایش و تنگی نشانه است برای گروهی که ایمان می‌آورند؟ ذَلِكَ خیر لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وجه الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پس حق خیشاوندان و مسکینان و در راه ماندگان را بده این برای کسانی که روی خدا می طلبند بهتر است و اینانند که رستگارند وَمَا آتَيْتُم مِن رِبَا لِيَرْبُ وَفِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِن تریدون الله هم المضعفون و آنچه به قصد ربا میدهید تا در اموال مردم فزونی یابد نزد خدا فزونی نخواهد یافت و آنچه را به عنوان زکات میپردازید که تنها وجه الله را میطلبید برکت و فزونی مییابد پس کسانی که چنین کنند اینان فزونی یافتگانند الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء الله همان کسی است که شما را آفرید آنگاه به شما روزی داد پس شما را میمیراند آنگاه شما را زنده میکند آیا هیچ یک از شریکانتان میتوانند چیزی از این کارها انجام دهند؟ او منزه و برتر است از آنچه شریک او قرار میدهند. الفساد فی البر والبحر بما كسبت ايد الناس ليُذِيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. به سبب کارهایی که مردم انجام دادهاند، فساد در خشکی و دریا آشکار شده است، تا خداوند جزای بعضی از آنچه را که انجام داده اند به آنان بچشاند، باشد که آنان به سوی حق بازگردند، قل سیرو فی الارض فانظروا کیف كان عاقبت الوزین من قبل كان اکثرهم مشرکین ای پیام بر بگو در زمین سیر کنید پس بنگرید عاقبت کسانی که پیش از این بودند چگونه بود بیشتر آنها مشرک بودند فأقم وجهك للدین القیم من قبل أن یأتی يوم لا مرد له من الله يومئذ يصطذعون پس روی خود را به آین پایدار بیاور نیش از آنكه روزی فرا رسد که برایش هیچ بازگشتی از سوی خداوند نیست آن روز مردم متفرق شوند من کفر بر کفر و من عمل صالحا يمهدون. کسی که کفر ورزد پس کفرش بر زیان خود اوست و کسی که کار شایست انجام دهد پس برای خودشان آماده می سازند لیجزی الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ من فضله انه لَا يُحِبُّ الْكَفِرِينَ تا خداوند کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایست انجام داده اند از فضل خود پاداش دهد بیگمان او کافران را دوست نمی دارد و من آیاتهی ای این یرسل الریاح مبشرات ولیوذیقکم وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِي تَجِرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِي تَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ و از نشانه های او آن است که بادهای مجد دهنده را می فرستد و تا از رحمت خود به شما بچشاند و تا کشتی ها به فرمان او حرکت کنند و تا از فضل او روزی بجوید و باشد که سپاس گویید و لقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاؤهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرمو وكان حقا علينا نصر المؤمنين و به راستی پیش از تو پیام برانی را به سوی قومشان فرستادیم پس با دلایل روشن نزدشان آمدند آنگاه از کسانی که گناه کردند انتقام گرفتیم و مؤمنان را یاری دادیم و یاری دادن مؤمنان بر احده ما بود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 فَإِذَا فا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله همان کسی است که بادها را میفرستد آنگاه ابرها را به حرکت در می‌آورد سپس آن ابرها را در آسمان آن گونه که بخواهد می‌گستراند و آن را پاره پاره می گرداند. پس می بینی که دانه های باران از لا آن خارج می شود پس هنگامی که این باران حیات بخش را به هر کس از بندگانش که بخواهد برساند ناگهان آنان خوشحال می شوند. و اینکنِ ای عليهم من قبله اگر پیش از آن که باران رحم برانان نازل شود مأیوس بودند. بنظر الی آثار رحمت الله كيف احی الأرض بعد موتها ان ذلك لمحیی الموت وهو على كل شیء قدیر پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را بعد از مردنش زنده میکند یقینا این خداوند زنده کننده مردگان است و او بر همه چیز تواناست است. لئن ارسلنا ریحا فرأوه مصفرا لظلو من بعده یکفرون و اگر بادی بفرستیم گرم و سوزان آنگاه آنکشزار زارها را زرد شده ببینند معیوس شده و پس از آن ناسپاس پاس میشوند فئن نک لا تسمع الموت ولا تسمع الصمم الدعاء اذا ولوا پس ای پیامبر تو نمی توانی سخنت را به گوش مردگان بشنوانی و نمی توانی کران را هنگامی که پشت کنان رو می سخن و ندای خود را بشنوانی و ما انت العمی عن ضلالتهم ان تُسمِعُ الا من يُؤْمِنُ بِي فهم و تو نمیتوانی کوران را از گمراهیشان بازگردانی و هدایت کنی تو تنها میتوانی سخن خود را به کسانی بشنوانی که به آیات ما ایمان دارند پس آنها در برابر حق تسلیم شده‌اند هستند. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا و يخلق ما يشاء و العليم القدیر. الله همان است که شما را ناتوان آفرید سپس بعد از ناتوانی قوت بخشید انگاه بعد از قوت ناتوانی و پیری قرار داد هرچه بخواهد می آفریند و او دانای تواناست ویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه كذلك كانوا یؤفكون و روزی كه قیامت برپا شود مجرمان سوگند یاد میکنند كه جز ساعتی در دنیا درنگ نکردند آری اینگونه از حقیقت و راه حق بازگردانده میشوند وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون بکسواني که دانش و ایمان داده شده اند گویانند به راستی شما به فرمان کتاب خدا تا روز رستاخیز درنگ کردید پس این روز رستاخیز است لیکن شما نمی دانستید لا ینفع الذین معذرتهم ولا هم یستعتبون پس آن روز کسانی که ستم کردند از خواهیشان سودی ندارد و به آنان مهلت داده نخواهد شد. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بأيتي لا الذين كفروا این انتم الا مبطلون برای مردم در این قرآن از هر گونه آوردیم آوردیم و اگر نشانی برای آنان بیاوری البته کسانی که کافر شدند گویند شما جز بیهود گویان نیستید كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون این گونه خداوند بر دلهای کسانی که نمی مهر می نهد فصبر وعد الله حق ولا يستخفن لا يوقنون پس ای پیام بر گرامی صبر پیش کن بیگمان گمان بعدی خدا حق است و هرگز کسانی که یقین ندارند تو را سبک سر نگردانند بسم الله الرحمن الرحیم الف لا الميم، ألف، لام، ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. اين آيات كتاب حکیم است. هدایت و هدایت و رحمت برای نیکوکاران است. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وهم بِالْآخِرَتِ هُمْ کسانی که نماز را برپا می دارند و زکات را میپردازند و آنها به آخرت یقین دارند اولائی که علی هدن من ربهم و هم المفلحون اینان از جانب پروردگارشان بر هدایت هستند و اینان رستگارانند و من الناس من یشتری لهو والحديث لیضل عن سبیل الله بغیر علم ويتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهیم و از مردم کسی هست که سخنان بیهوده را میخرد تا به نادانی مردم را از راه خدا گمراه سازد و آن آیات را به ریش خند اینان برایشان عذاب خار کننده هست. وإذا تُتْلَى عَلَيْهِ آَيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَلْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي اُذُنَيهِ وَقَرَى فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ و هنگامی که آیات ما بر او خانده شود تکبر کنان روی میگرداند گویی که آن را نشینیده است گویی در گوش هایش سنگینی است پس او را به عذابی دردناک بشارده این الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعیم بی گمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند برای آنها باغ پر نعمت بهشت است خالدین فيها وعد الله حقا وهو هو العزیز الحکیم جاودان در آن خواهند ماند بعد خداوند راست است و او پیروزمند حکیم است خلق السماوات بغیر عمد ترونها وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ تَمِيدَ بكم وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأن خداوند آسمان ها را بدون ستون آفرید که میبینید و در زمین های استوار افکند تا شما را نلرزاند و از هر گونه در آن بپراکند و از آسمان آبی نازل کردیم. آنگاه در آن زمین هر جافت گیاه پرارزش و نیکو رویاندین هذا خلق الله فارونی ماذا خلق الذين من دون بل الظالمون في ضلال مبين <تصفيق> این آفرینش خداوند است پس به من نشان دهید کسانی که غیر از او هستند چه چیزی را آفریده‌اند بلکه ستمکاران در گمراهی آشکاری هستند ولقد آتینا لقمان الحکمه انشکر لله ومن یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فإن الله غنی حمید و به راستی به لقمان حکمت دادیم و به او گفتیم که شکر خدا را به جای آور و هر کس شکر کند تنها به سود خود شکر کرده است و هر کس که کفران کند پس بی تردید خداوند بی نیاز ستوده است و اذ قال لقمان لابنه وهو یعظه یا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم و به یاد آور هنگامی را که لقمان به فرزندش در حالی که او را پند میداد گفت ای پسرک من به خدا شرک نیاور بغيمان شرک ستم بزرگی است و وصینا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفي صاله في عامين عمل تو ون على ونی وف صالو ف عنی اننش کولی ولی وال لديك إلي المصير و به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی حمل کرد. و از شیر باز گرفتنش در دو سال است آری سفارش کردیم که برای من و برای پدر و مادرت شکر به جای آور که بازگشت همه شما به سوی من است و این جاهده که ان تشرک بی ما لیس لکبی علم فلا تطعهما فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَةٌ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بِإِلَيْهِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ و اگر آن دو مشک باشند و تلاش کنند که تو چیزی را که به آن علم نداری شریک من قرار دهی پس از آنان اطاعت نکن و در دنیا با آنان به شایستگی رفتار کن و از راه کسی پیروی کن که توبه کنان به سوی من باز آمده است سپس بازگشت همه شما به سوی من است آنگاه شما را از آنچه انجام میدادید آگاه می کنمم يابُونّ إَِّهاِ تكم قال من مِن خردل فَتكُم في صخره فَتَكُنْ فِي صَخْرَتٍ اَوْ فِي السَّمَاوَاتِ اَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِيرٌ ای پسرک من اگر عمل نیک یا بد به اندازه سنگینی دانه خردل باشد آنگاه در درون تخت سنگی یا در ها یا در زمین باشد خداوند آن را در روز قیامت برای حساب می آورد بیگمان خداوند بارید بین آگاه است یا بنی اقیم الصلاة و امر بالمعروف و انها عن المنکر و صبر على ما اصابك این ذلک من عزم الامور ای پسرک من نماز را بر پادار و امر به معروف کن و نهی از منکر کن و بر هر آنچه به تو برسد صبر کن بی تردید این از کارهای سترگ است. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور و با از مردم روی مگردان و مغروران در زمین راه مرو بیگمان خداوند هیچ متکبر فخر فروشی را دوست ندارد و قصد في مشيك و من صوتك ان الاصوات صوت الحمير و در راه رفتند اعتدال را رعایت کن و از صدای خود بکاه و هرگز فریاد نزن زیرا زشترین صداها صدای خران است. أَلَمْ <تصفيق> تَرَوا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر آیا ندیدید که خداوند آنچرا که در آسمانها و آنچرا که در زمین است مسخر شما کرده است و نعمتهای خود را آشکار و پنهان بر شما ارزانی داشته است؟ و از مردم کسی هست که بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنگری درباره خدا مجادله می کند و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا اولو کهان الشیطان يدعوهم الى عذاب السعير. و هنگامی که به آنان گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید گویند نه بلکه ما از چیزی پیروی میکنیم که نیاکان خود را بر آن یافتیم آیا حتی اگر شیطان آنان را به سوی عذاب سوزان دعوت کند باز هم از آنها پیروی کنند و من یسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقا وإلى الله عاقبة الامور و کسی که روی خویش را تسلیم خدا کند در حالی که نیکوکار باشد راستی به دستگیری محکمی چنگ زده است و سرانجام همه کارها به سوی خدا است و من کفر فلا یحزن كفره کفره مرجعهم فننبئهم بما عملوا این الله علیم بی ذات و کسی که کافر شود پس کفر او تو را غمگین نسازد بازگشت همه آنان به سوی ماست پس آنان را از آنچه انجام داده اند آگاه خواهیم کرد بی تردید خداوند به آنچه درون سینه داناست نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم عذاب غليظ آنها را اندکی از متاع دنیا بهرهمند میکنیم، سپس آنها را به تحمل عذاب سختی ناگزیر سازیم سألتهم من خلق السماوات و ليقولن الله قل الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون و اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفرید مسلما میگویند الله بگو حمد و ستایش مخصوص خداوند است بلکه بیشتر آنها نمیدانند. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست بیگمان خداونده است که بینیاز ستوده است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 و دریا مرکب گردد و هفت دریای دیگر به مدد آن بیاید سخنان خدا پایان نمیابد بی تردید خداوند پیروزمند حکیم است. ما خلقکم ولا بعثکم الا که نفس واحده این الله سمیع بصیر آفرینش و برانگیختن همه شما در روز قیامت جز مانند آفرینش و زنده کردن یک تنبیش نیست بیگمان خداوند شنوای بیناست الم تر ان الله يولج اللیل فی النهار ويولج النهار فی اللیل و سخر الشمس والقمر و سخر الشمس و القمر کل یجری الى اجل مسمن و الله بما تعملون خبیر آیا ندیدی که خدابند شب را در روز داخل می کند و روز را در شب داخل می گرداند و خرشید و ماه را مسخر کرده که هر یک تا زمانی معین در حرکت است و یقینا خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است ذالک بأن ان الله هو الحق و يدعون من دونه الباطل و الله هو العلي الكبیر این بدان سبب است که خداوند حق است و همانا آنچه به جز او میخوانند باطل است و همانا خداوند است که بلند مرتبه بزرگ است. الْمَتَرَاءَنَ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ الله لِيُرِيَكُمْ من آيَاتِهِ این نفی ذالک لآیات آیا ندیدی که کشتی به نعمت خدا در دریا حرکت می کند تا خداوند بخشی از نشانه های خود را به شما نشان دهد بیگمان در این برای هر شکیبای سپاس گذار نشانه است؟ وَإِذَا رُشِّيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِ آیَاتِ مَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ و هنگامی که در دریا موجی همچون سایبان آنها را بپوشاند خدا را با اخلاص می پس چون آنها را با آوردن به خشکی نجات داد آنگاه بعضی از آنان راه اعتدال را پیش می‌گیرند و بر ایمان و عهد خود میمانند در حالی که بعضی دیگر راه کفر را پیش می‌گیرند و آیات ما را هیچ کس جز پیمان شکنان ناسپاس انکار نمی یا <تصفيق>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 <تصفيق> ای مردم از پروردگارتان بپرهیزید و از روزی بترسید که نه پدر کیفر فرزندش را به عهده میگیرد و نه فرزند چیزی از کیفر اعمال پدرش را عهده دار می شود یقیناً وعده خداوند حق است پس زندگی دنیا شما را نفریبد و شیطان فریبکار شما را نسبت به خدا نفریبد. الله عنده علم الساعة و ينزل الغیف و يعلم ما في الارحام و ما تدري نفس ماذا تكسب غدا و ما تدري نفس باي ارض تموت اين الله عليم خبير بيگمان المقياamat نزد خداست و او باران را نازل می کند و آنچه را که در رحم هاست میداند و هیچ کس نمیداند فردا چه چی چیز به دست میآورد. و هیچ کس نمیداند که در کدام سرزمین می میرد یقینا خداوند دانای آگاه است. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. نازل شدن این کتاب که در آن هیچ شکی نیست از سوی پروردگار جهانیان است ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلك لعلهم يهتدون آیا می‌گویند محمد آن را به دروغ بافته است؟ نه، بلکه آن حق است از جانب پروردگار توست تا هشدار دهی قومی را که پیش از تو هشدار دهنده ای برایشان نیامده است. شاید هدایت شوند.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 الله کسیست که آسمانها و زمین و را میان آنهاست در شش روز آفرید سپس بر عرش قرار گرفت شما را جز او هیچ کارساز و شفیعی نیست آیا پند نمیگیرید؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه فی یوم کان مقداره کان مقداره الفسنت من ما تعدون کار جهان هستی را از آسمان تا زمین تدبیر می کند سپس در روزی که مقدار آن هزار سال از سالهایی است که شما می شمارید به سوی او بالا می‌رود ذالک عالم الغیب والشهاده العزیز الرحیم این توصیف دانای پنهان و آشکار پیروزمند و مهربان است الذی احسن كل شیء خلقہ و بدأ خلق الانسان من طين همان کسی که هرچرا آفرید به نیکوترین وجه آفرید و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد ثم جعل نسله من سلالت من مائم سپس نسل او را از اساری از آب ناچیز پدید آورد ثم سواه ونفخ فیه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والأفئدة قلیلا ما تشكرون انگاه اندام او را سامان داد و از روح خود در آن دمید و برای شما گوش و چشم ها و دلها قرار داد، چه اندک سپاس میگذارید. وقالوا أِذَا ضللنا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم كافرون و کافران گفتند آیا هنگامی که مردیم و در زمین ناپدید شدیم آیا در آفرینش تازه‌ای خواهیم بود بلکه آنان به دیدار پروردگارشان کافرند قل يتوفاكم ملك الموت الذي وُكّل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ای پیام بر بگو فرشته مرگ که بر شما گماشته شده جانتان را میگیرد سپس به سوی پروردگارتان بازگردانده میشوید ولو و اگر ببینی مجرمان را هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان گارشان سرهایشان به زیر افکنده اند گویند، پروردگارا، دیدیم و شنیدیم، پس ما را بازگردان تا کار ای انجام دهیم، بیگمان ما به قیامت یقین داریم و لو شئنا لآتینا كل نفس هداها ولكن حق القول منی من وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ و اگر میخواستیم به هرکس کس هدایتش را میدادیم دادیم ولیکن سخن من حق است که جهنم را از جنیان و آدمیان همگی پر میکنم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا اننا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون پس به کیفر آنکه دیدار امروزتان را فراموش کردید عذاب را بچشید بیگمان ما نیز شما را فراموش کردیم و عذاب جاودان را به خاطر اعمالی که انجام میدادید بچشید اینما یؤمن بآیاتنا آیات إذا لذین اذا ذکروا بها خروا سجدا و سبحوا بحمد ربهم خرو سجدن و بحمد ربهم وهم لا يستکبرون تنها کسانی به آیات ما ایمان می‌آورند که چون به آن پند داده شوند سجد کنان به زمین افتند و پروردگارشان را به پاکی بستایند و آنان تکبر نمی کنند. ستجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ینفقون پهلوهایشان از بسترها در دل شب دور میشود پروردگار شان را بابیم و با امید میخوانند و از آنچه به آنها روزی دادیم انفاق میکنند فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون پس هیچ کس نمی داند. چپاداش های عظیمی که مایه روشنی چشم هاست برای آنها نهفته شده است به پاس آنچه که در دنیا انجام میدادند می دادند <تصفيق> آیا کسی که مؤمن است؟ همچون کسی است که فاسق است نه هرگز برابر نیستند امم الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المقوات نزلا نزلا بما كانوا يعملون اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند پس برای آنها باغهای بهشت جاویدان خواهد بود این به عنوان محل پذیرایی از آنهاست به پاداش آنچه که انجام میدادند و اما فسقوا كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم, وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون و اما کسانی که فاسق شدند پس جایگاهشان آتش جهنم است هرگاه که بخواهند از آن خارج شوند به آن باز شوند و به آنها گفته شود بچشید عذاب آتشی را که آن را تکزیب می کردید. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَادُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ و یقیناً به آنان از عذاب نزدیک این دنیا پیش از عذاب بزرگ آخرت میچشانین شاید بازگردند من, اظلم من تکربا بایاتی ربی ثم اعرض عنها اننا من المجرمين بکیست ستم کارتر از آن کسی که به آیات پروردگارش پن دهند آنگاه از آن اعراض کند بیگمان ما از مجرمان انتقام خواهیم گرفت ولقد آتینا موسى الكتاب فلا تكن فی مریة من لقائه وجعلناه هدى لبنی اسرائیل بهراستی به موسی كتاب تورات دادیم پس ای پیام برای گرامی از دیدار او در شک و تردید مباش و ما آن تورات را وسیله هدایت برای بنی اسرائیل قرار دادیم وجعلنا منهم ائمتين يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا باياتنا یوقنون و از آنان پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می کردند چون شکیبایی ورزیدند و به آیات ما یقین داشتند این ربک هو یفصل بینهم یوم القیامه فیما كانوا فيه یختلفون مسلما پروردگار توست که در روز قیامت میان آنها در آنچه اختلاف میکردند داوری میکند اولم یهدی لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون يمشون فی مساکنهم این فی ذالک لآیات افلا يسمعون آیا برای آنها روشن نشده است که چه نسل‌های بسیاری را پیش از آنها هلاک کردیم که اینان در خانه‌های ویران شده آنها راه میروند بیگمان در این نشانه‌ها و هاست آیا نمی‌شنوند نَنسوقُ ندیدند که ما آب به به سوی منه ك ما زمین خوشک و بیگیاه میرانیم. پس به وسیله آن کش زار را بیرون می آوریم که چهار پایانشان و خودشان از آن می خورند. آیا نمی بینند؟ و متى هذا الفتح ان كنتم صادقین و گویند اگر راست گویید این پیروزی کی خواهد بود؟ قل اليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون بگو روز پیروزی کسانی که کافر شدند ایمانشان سودی نخواهد داشت و نه به آنها مهلت داده میشود فا اعرض عنهم و انتظر انهم منتظرون سپس ای پیامبر از آنها روی بگردان و منتظر باش که آنها نیز منتظر هستند بسم الله الرحمن الرحيم ا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما از خدا به ترس و از کافران و منافقان اطاعت نکن بیگمان خداوند دانای حکیم است. و اتبع ما یوحا الیک من ربک این الله کان بما تعملون خبیرا و از آنچه از سوی پروردگارت به تو وح می شود پیروی کن یقیناً خداوند آنچه انجام میدهید آگاه است و توکل علالله و کفا بالله وکیلا و بر خدا توکل کن و خداوند به عنوان کارساز و مدافع بسنده است ما جعل الله لرجل من قلبين فی جوفه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 والله یقول الحق و یهدی السبیل خداوند برای هیچ کس دو قلب در درونش قرار نداده است و هرگز همسرانتان را که مورد زهار قرار میدهید دهید مادران شما قرار نداده است و نیز فرزند خانده های شما را فرزند حقیقی شما قرار نداده است این سخن باطل شماست که به دهان خود میگویید و خداوند سخن حق را میگوید و او به راه راست هدایت میکند ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله اِن لَم تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ وَفُورَ رَّحِيمًا آنها را به نام پدرانشان بخوانید که این کار نزد خدا منصفانه تر است پس اگر پدرانشان را نمیشناسید برادران دینی شما و موالی شما هستند و در آنچه که قبلا اشتباه کرده اید گناهی بر شما نیست ولیکن آنچه را که دلهای شما از روی عمد میخواهد و میگویید گناه است. و خداوند آموزنده مهربان است. النبی أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجههم امهاتهم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 پیام بر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسران او مادران آنها هستند و در کتاب خدا خیشاوندان برخی از آنان به برخی دیگر از سایر مؤمنان و مهاجران سزاوارترند مگر اینکه به دوستانتان نیکی کنید و سحمی از انوال خود را به آنان بدهید این حکم در کتاب نوشته شده است و ایز اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من و ابراهیم و و ابن مریم و منهم میثاقا غلیظا و ای پیام بر گرامی به یاد آور هنگامی را که از پیام بران پیمانشان را گرفتیم و همچنین از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و از همه آنان پیمان محکمی گرفتیم لیسال اصفادقینا عن صدقهم واعد للکافرین عذابا الیما تا خداوند راستگویان را از صدقشان بپرسد و برای کافران عذابی دردناک آماده کرده است يا کسانی الذين ایمان اذكروا اید الله عليكم جاءتكم جنود عليهم ريحا وجنودا لم وكان الله بما تعملون نعمت خدا را بر خود به یاد آورید که لشكرهایی به سوی شما آمدند پس ما تند باد سختی بر آنها فرستادیم و لشكرهایی از فرشتگان که آنها را نمیدیدید و آنها را در هم کوبیدیم، و خداوند به آنچه انجام میدهید بیناست إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنگامی که آنها از سمت بالای شهر شما و از سمت پایین شهرتان به سوی شما آمدند و زمانی را که چشمها از شدت وحشت خیره شد و دلها به ها رسید و گمانهای گوناگونی به خدا می بردید. <تصفيق> آنجا بود که مؤمنان آزمایش شدند و به سختی تکان خوردند. و اذ یقول المنافقون والذین في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. بنیز به آورید هنگامی را که منافقان و کسانی که در دلهایشان بیماری است می گفتند خدا و پیامبرش جز فریب به ما وعده ای نداده است و اذ قال الطائف منهم يا اهل يثرب لا مقام فرجعوا ويستأذن فریق منهم النبی یقولون إن بیوتنا عورة وما هی بعورة إن يریدون إلا فرارا و نیز هنگامی که گروهی از آنان گفتند ای اهل یسرب اینجا جای ماندن شما نیست پس به خانه‌های خود برگردید و گروهی از آنان از پیام بر اجازه بازگشت میخواستند میگفتند بیشک خانه های ما بیحفاظ است در حالی که بیحفاظ نبود آنها فقط میخواستند از جهاد فرار کنند ولو دخلت عَلَيْهِمْ من أقطارها ثم سئلوا الْفِتْنَةَ لأتواها وما تلبسوا بها إلا يسيرًا و اگر لشکر دشمنان از اطراف مدینه برانان وارد می‌شدند و خانه‌هایشان را محاصره می‌کردند سپس پیشنهاد بازگشت به کفر و شرک به آنها میکردند میپذیرفتند و جز اندکی برای انتخاب آن درنگ نمیکردند کردند. ولقد کانو عهد الله من قبل لا يولون الادباق و كان عهد الله مسئوله و به راستی که آنان پیش از این با خدا عهد کرده بودند که پشت به دشمن نکنند و عهد و پیمان خدا باز خاص دارد قل لي فعكم الفرار إِنَّ فرَرْتُم مِنَ الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاَ أي پیامبر بگو اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید هرگز فرار سودی به حال شما نخواهد داشت آنگاه جز اندکی از زندگی دنیا بهرهمند نخواهید شد قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصيرا ای پیام بر بگو چه کسی است که شما را از اراده خدا حفظ می کند اگر او برای شما بدی اراده کرده باشد یا رحمتی برای شما اراده کرده باشد و آنها برای خود جز خدا هیچ دوست و یاوری نخواهند یافت قد یعلم الله المعویقین منكم والقائلین لی اخوانهم هلوم ولا و لا یعتون البحث الا قلیلا قطعا خداوند بازدارندگان را از شما و آنان را که به برادرانشان گفتند به سوی ما بیایید و جز اندکی به کارزار نمی آیند میشناسد. شناسد علیکم فا جاء الخوف <سؤال> رأيتهم ينظرون الیک تدور اعیونهم تدور اعیونهم کالذی یغشا علیه من الموت فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحْحَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا در حالی که آنها بر شما بخل میبرزند. پس هنگامی که زمان ترس پیش آید میبینی که به تو نگاه میکنند در حالی که چشمهایشان در هدقه میچرخد مانند کسی که از سکرات مرگ بیهوش شده باشد پس چون ترس و وحشت برطرف شد شما را با زبانهای تیز و تند خود میرنجانند در حالی که برمال سخت حریص و آزمندند اینان هرگز ایمان نیاورده لذا خداوند اعمالشان را تباه و نابود کرد و این کار بر خدا آسان است یحسبون الاحزاب لم يذهبوا و این یأتی الاحزاب و انهم بدونَ ف كانوا فيكم ما إلا قليلا. آنها گمان می کنندند که لشکریان احزاب هنوز نرفتهاند و اگر لشکریان احزاب بار دیگر برگردند. آرزو میکنند ای کاش آنان در میان اعراب بادی نشین بودند که از اخبار شما جویا شدند و اگر در میان شما باشند جز اندکی پیکار نکنند لقد كان لكم فی رسول الله اصوت حسنت لمن کان الله لمن كان يرج الله واليوم وذكر الله كثيرا یقینا برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی است برای آنان که به خدا و روز آخرت امید دارند و خدا را بسیار یاد میکنند ولمما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما بچون مؤمنان لشكر احزاب را دیدند گفتند این همان چیزی است که خدا و پیام برش به ما وعده داده و خدا و پیام برش راست گفته اند و این امر جز بر ایمان و تسلیمشان نیفزود مِنَ مؤمنان رجال صدق ما عهد الله عليه فمنهم من قضا نحبه و منهم می من وَمَا و ما از مؤمنان مردانی هستند که با عهد و پیمانی که با خدا بسته بودند و فاكردند. پس کسی از آنان هست که پیمان خود را به آخر رساند و از آنان کسی هست که در انتظار است و هرگز تغییر و تبدیلی در پیمان خود نیاورده لجز الله الصادقین بصدقهم و یعذیب المنافقین این شاء أو يتوب عليهم إن تا خدا راستگویان را به خاطر صدقشان پاداش دهد و منافقان را اگر بخواهد عذاب کند یا توبه آنها را بپذیرد بی تردید خداوند آمورزندی مهربان است ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا و در غزوه احزاب خداوند کافران را با خشمشان از مدینه بازگرداند در حالی که هیچ خیر و منفعتی نیافتند و خداوند مؤمنان را از جنگ بینیاز کرد و پیروزی نصیبشان ساخت و خداوند توانای پیروزمند است و انزل الذین ظاهرهم من اهل الكتاب من صیاصیهم و قذفتی قلوبهم الرعب و, في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون و, فريقا. و خداوند کسانی از اهل کتاب را که از آنها حمایت کرده بودند از قلعه هایشان فرود آورد و در دلهایشان وحشت انداخت و شما گروهی را می کشتید و گروهی را اسیر می گرفتید و ا ورثكم ارضهم وديارهم واموالهم واطلن لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير و خداوند زمین آنان و خانههایشان و اموالشان را به شما واگذاشت و همچنین زمینی را که در آن گام ننهاده بودید وخداوند خداوند بر هر چیز تواناست. يا اي نبي قل ازواجك اگر كنت نتردنا الحياه الدنيا و زينتها فَتَعَالَيْنَ اُمَدْتِعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ای پیامبر به همسرانت بگو اگر شما زندگی دنیا و زینت آن میخواهید پس بیایی تا با حدیعی مناسب شما را بهرمند سازم و شما را به طرز نیکوئی رها کنم وَإِن كُ تُ تُريدِنَ اللهَّه وَرسُهُ وَداررآ آخرِة فَإِن اللهَّهَ عدلِمُحسنَاتِ مِ كُ أأَجرًا عظِيمَا و اگر شما خدا و پيام و سرای آخرت را میخواهید. پس بدانید که خداوند برای نیکوکارانتان پاداش عظیمی آماده کرده است. یا نساء نبی من یأتی من کن بفاحشت مبینتی و ضاعف لها العذاب ضعفین و ای زنان پیامبر، هر کس از شما که گناه ناشایست آشکاری مرتکب شود، عذاب او دو چندان افزوده می شود و این بر خدا آسان است،